drama. Oh. بنام الله که بخش و بارحمت ده رحمت است موسيقى <موسيقى> <موسيقى> لام میم را اینها آیات کتابی است که بغ از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است هرچند اکثر مردم باور ندارند الله است که آسمانها را آنچنان که میبینید بدون هیچ ستونی بنا کرد سپس به فرمان ربایی پرداخت و خورشید و ماه را تا زمانی معین در مدار خودشان به حرکت واداشت تمام امور را تدبیر میکند و آیات و نشانه را شعر میدهد شاید به دیدار پروردگارتان یقین یعنی پیدا کنید او است که زمین را وسعت داد و در آن کوه‌ها و رودها ایجاد کرد و از هر میوه‌ای به صورت جفت پدید آورد و شب را به روز میپوشاند و در همه اینها نشانه است برای قومی که اهل تفکرند و در کره زمین بطع زمین مختلفی کنار هم وجود دارد همچنین باغهای انگور و کشدارها و نخلهایی با دو تنه در یک ریشه و یا یک تنه با یک ریشه وجود دارد که همگی از یک آب سیراب می شود اما از نظر میوه برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم در تمام اینها برای خردمندان نشانه است. اگر می خواهی از چیزی تعجب کنی عجیب حرف آنهاست که می گویند اگر ما تبدیل به خاک شدیم چگونه باز زنده می آنها کسانی هستند که پروردگارشان را انکار اند. در نتیجه گل و زنجیرها گردن دارند و بیتردید، اهل اهل دوزخند و در آن جاودانه می مانند قبل از آن که به کار نیک و آمرزش الهی رویاورند با شتاب از تو عذاب الهی را خواست دارند در حالی که قبل از آنها عبرتهای قابل ملاحظه‌ای بوده است بدان که پروردگارت هم نسبت به مردم با وجود ظلمی که می‌کنند آمرزنده است و هم مجازات شدیدی دارد کسانی که کفر می‌ورزند می‌گویند چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل نمی شود تو فقط یک هشدار دهنده و برای هر قومی هدایت کننده مجزا است خداوند بزرگ آنچرا که هر مادهی حمل می می‌داند. همچنین از آنچه رحم نگه نمی‌دارند و آنچه نگهداری می‌کنند آگاه است. هر چیزی در قانون او به مقدار معین است. دانای دیده ها و نادیده هاست و او بزرگ و متعالی است. چه سخنی را کتمن کنید و چه بر زبان آرید برای او یکسان است. همچنین است اگر کسی به طور مخفیانه در شب حرکت کند و یا در روز روشن. هر انسانی به دستور خداوند فرشتگانی دارد که از روبرو رو و پشت سر او را از حوادث حتمی محافظت می کند. بدانید الله لا غیر م بوتسبدانید که خداوند وضع هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنكه آن قوم خود را تغییر دهند و اگر خداوند بخواهد آسیبی به گروهی برساند هیچ دععفع کننده و یاوری به جز خودش وجود نخواهد داشت اوست که برق آسمان را گاهی برای خوف و تنبه گاهی برای امید باران به شما نشان میدهد و ابرهای بارور را به وجود می آورد رعد آسمان تسبیح و همد او را می گوید. فرشتگان نیز از خوف او تسبیح گوید سائقه ها را می فرستد تا هر کس را سلاح بداند بدان گرفتار کند با این همه هنوز در وجود خدا مجادله می کنند حالان که او قدرتی بی دارد دارند صبحان قدوس، صبحان قدوس. دعوت به حق برای اوست، و کسانی که به جای خداوند چیزهای دیگری را به خدایی میخواند، بدانند اجابتشان نمی کنند. اینان همان کسانی هستند که کف دستهای خود را از آب پر کرده تا به دانشان برسانند اما هرگز نتوانند و دعای کافران چیزی جز گمراهی نیست هرکس در آسمان ها و زمین است چه بخواهد چه نخواهد در حال سجده الله است. حتی سایه در هر صبح و شام به سجده می رود بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست بگو الله. بگو چرا به جز او هایی را برگزیده اید که حتی قادر به تأمین سود و زیان برای خود نیستند بگو آیا بینا و نابینا برابرند یا ظلمات و نور یکسانند و یا شریکانی که برای خدا قائل شده اید مخلوقاتی چون مخلوقات او دارند حقیقت آفرینش بر آنها مشتبه شده است بگو الله خالق هر چیزی است و او یگانه و مسلط است خداوند از آسمان آبی فرستاد تا از در و رودها به قدر ظرفیت جاری شود و رود این سیلابها ها کافی است چنان که در کوره زرگران و آهنگران روی مواد مذابی که می خواهند از آن زیورآلات یا وسائل دیگر تعیین کنند کافی مثلان وجود دارد خداوند این گونه برای حق و باطل مثال میزند وقتی کف ها بروند و محف شوند فقط آنچه در زمین باقی میماند مورد استفاده مردم است آری خدا این گونه مثل میزند برای کسانی که دعوت پروردگارشان را به حق پذیرفتند پاداش نیکویی است و کسانی که نپذیرفتند اگر تمام سروتهای زمین و همانند آن را داشته باشند و بخواهند آن را بدهند تا از مجازات الهی در امان باشند امکان پذیر نیست حساب بدی برای آنها باز شده است و جایگاهشان جهنم است و چه بد است، این جهنم آیا کسی که می آنچه از سوی پروردگارت نازل شده حق است با کسی که نسبت به این حقیقت کور است، برابر است تنها خردمندان درک می کنند همان کسانی که به عهد الهی وفا می کنند و تحت هیچ عنوان پیمانشان را نمی شکنند کسانی که آنچرا خداوند امر به پیوندان کرده است محترم شمرده و رعایت می کنند و از قهر پروردگارشان خوف دارند و از بدی حساب و دستاوردشان بیمناکند کسانی که به خاطر رضایت روی پروردگارشان در برابر سختی صبر سبر می کنند و نماز به پا و از آنچه چه روزیشان کردیم چه در نهان و چه در آشکار انفاق می کنند و تلاش می کنند تا بانیکی کردن بدی ها را از بین ببرند بدون شک زندگی جاودان از آن آنهاست. آنها و هر کس از پدران و همسران و فرزندانشان که عمل کردی خوب و مفید داشته باشند به بهشتهای جاودان داخل می شوند و فرشتگان نیز از هر دری به استنبالشان می آیند سلام, سلام بر شما به خاطر آن همه صبر و استقامتی که از خود نشان دادید مبارک است این زندگی خوب جاودانی کسانی که عهد الهی را پس از تحکیم آن گستاخانه می شکنند و پیوندهایی را که خداوند امر به رعایت آن کرده می کنند و در زمین فساد و تباهی به راه میاندازند بدون تردید نفرین بر آنها باد و جایگاه بدی برایشان مهیاست. این الله هست که روزی هر کس را صلاح بداند وسعت می‌بخشد و هر کس را سلاح بداند برو تنگ میگیرد مردم به زندگی دنیوی شادمانند حالان که زندگی دنیا در برابر زندگی جاودان چیزی جز یک بهره اندک نیست و کسانی که کافرند و حقایق را انکار می کنند می چرا از جانب پروردگارش معجزهای بر او نازل نمی شود بگو خداوند هر که را سلاح بداند در گمراهی میگذارد، و کسانی را که روی سوی او می آورند، هدایت می کند. آنها که به حقایق ایمان آوردند قلبهایشان با یاد خدا آرام می گیرد. بدانید که قلبها فقط با یاد خدا آرام می‌گیرند. کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل سراسر خوبی و خدمت است خوشاب حالشان و گوارابات سرنوشت نیکشان ما تو را به سوی امتی فرستادیم که قبل از آنها امتهای دیگری بودند تا آنچه بر تو وعی کردیم بر آنها بخانی هرچند آنها به خدای بخشنده کافر شدند بگو او پروردگار من است و جز او هیچ معبودی نیست بر او تبکل می کنم و توبه من به درگاه اوست. اگر قرار بود گرآنی کوها را به جنبش وادارد و زمین را از عظمت خود پاره پاره کند و مردگان را به سخن وادارد جز این برآن نبود همه امور به دست خداست آیا اهل ایمان نمی دانند که اگر خدا می‌خواست خواست همه مردم را به اجوار هدایت می کرد؟ پیوسته به آنها که حقایق را انکار می کنند به خاطر عمل کردشان سختی وارد می شود. و یا این مصائب به نزدیکی خانه هایشان فرود میآید و این روند ادامه دارد تا زمانی که بعده الهی رسد به خداوند هیچگاه از بعد خود تخلف نمی کند بدان که پیامبران قبل از تو نیز تمسخر می شدند. به منکران حقیقت مهلت دادم سپس گریبان آنها را گرفتم و چه سخت بود مجازات من آیا کسی که بر همه مسلطه است و اعمال همه را می چون خدایان دروغین است آنها همتایانی برای خداوند قائل شدهاند بگو آنها را نام ببرید شاید میخواهید خداوند را از وجود چیزهایی در زمین باخبر کنید که نمیدانند و یا سخنان بیمونتووا میگویند نه در نظر اهل کفر نقشه های فریبکارانشان زیبا جلوهگر شده است راه نجات بخش الهی بر آنها بسته شده است بدانید هر کس را خدا در گمراهی بگذارد هیچ راه نمایی برای او وجود ندارد در زندگی دنیا گرفتار عذاب خواهند بود حالان که عذاب آخرت بسیار سختتر است و برای آنها در برابر مجازات خداوند هیچ محافظی وجود ندارد به تمثیل در آن بهشتی که به حرمت گذاران خداوند وعده داده شده است نهرها جاری میبه ها و سایه درختانش همیشه گیست و این سرنوشت کسانی است که حرمت خداوند را نگاه داشتند اما سرنوشت منکران حقیقت آتش است. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم، از آنچه که بر تو نازل شده شادمانند اما برخی گروهها بعضی از آن را انکار می کنند. بگو من معمور شدم تا خدا را بنده باشم و به او شرک نورزم و به سوگ او مردم را بخوانم زیرا بازگشت همه به سوگ اوست. و اینچنین بر تو آیاتی حکیمانه به زبانی روان و گویا نازل کردیم چنانچه از خواهش نفسانی آنها پیروی کنی، آن هم بعد از آن که از حقیقت آگاه شده ای بدان که در برابر مجازات خداوند هیچ یاور و نگهبانی نخواهی داشت ما پیامبرانی را قبل از تو فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم حالان که هیچ نمی نمیتوانست بدون اجازه خداوند معجزه بیاورد بدان که برای هر زمانی است، که پایانش در آن مشخص شده است یمحو الله ما یشاء ام الکتاب خداوند هرچه را صلاح بداند مهو نابود می کند و نابود میکند و هرچه را صلاح بداند پایدار و استوار میگرداند و ام الکتاب سرامد همه کتاب نزد اوست چه قسمتی از مجازات هایی را که به آنها وعده داده در زمان حیاتت به تو دهیم یا قبل از آن تو را بمیرانیم بدان که تو فقط معمور ابلاغ هستی و حساب بر اهده ماست آیا نمی که ما پیوسته عمر زمین را از هر طرف کم میکنیم این خداوند است که حکم می هیچکس هیچ کس توانایی جلوگیری از حکم او را ندارد و او کسی است که سریعا به حسابها رسیدگی می کند. قبل از آنها کسانی بودند که نقشه های فریبگارانه کارانه میکشیدند. حالان که خداوند تدویر کننده ی همه امور است از دستاورد هرکس کس با خبر است و به زودی منکران حقیقت خواهند دانست که زندگی جاودانه از آن کیست و کسانی که به حقایق کافرند میگویند تو پیانبر نیستی بگو خدا و کسانی که علم به قرآن دارند برای گواهی دادن به حقانیت رسالت من کافی است الذین کفرون است مرسله والكفان بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم رادسك فدا عندي بولاند مرتبب